فصل دوم هم تا سازها. در آغاز همه چیز ساده بود. توضیح چگونگی آغاز یک جهان ساده هم خیلی آسان نیست؟ من فرض را بر این میگذارم که همه قبول داریم. از آن مشکلتر توضیح دادن ظهور ناگهانی یک جهان زنده پیچیده و کاملا مرتب و بسامان است. یعنی حیات یا چیزی که بدواند حیات بیافریند. نظریه داروین با استفاده از انتخاب طبیعی می تواند به کمک ما بیاید زیرا مسیری را به ما نشان می که در آن سادگی به پیچیدگی تبدیل می شود. چگونه اتمهای در هم بر هم گروه گروه در مجموعه های پیچیده‌تر دستبندی شدند و سرانجام انسان ساخته شد؟ راه حلی که داروین در اختیار ما میگذارد تنها راه حل معقولی است که تاکنون برای حل معمای وجود ما مطرح شده است من سعی میکنم این نظریه مهم را به صورتی همگانی تر از آنچه تاکنون معمول بوده با شروع از زمانی قبل از خود تکامل شرط دهم در واقع بقای مناسب ترین های داروین موردی خاص از یک قانون کلیتر به نام بقای باثبات هاست. دنیا پر از چیزهای باثبات است. هر چیز باثبات ای از اتم هاست که ثبات دائم دارند یا تقریبا به آن اندازه از ثبات رسیده اند که بتوان نامی بر آنها گذاشت. چه به صورت یک مجموعه منحصر فرد مثلا کوه ماترهورن باشد که استحقاق داشتن یک نام را داشته است، چه گروهی از اشیاء باشد. مثل قطره های باران که با سرعت نسبتاً زیادی به وجود نیاین و و همهشان یک اسم دارند و عمرشان هم بسیار کوتاه است چیزهایی که ما در اطرافمان میبینیم و آنچه فکر میکنیم باید در موردشان توضیح داده شود سنگ ها کهکشان ها امواج اقیانوس همه کم و بیش الگوی ثابتی از اتم ها هستند حباب های صابون کروی زیرا برای لایه نازکی که درونش پر از گاز است، یک هیئت باثبات است. در یک سفینه فضایی هم آب به صورت قطره‌های کوچک کروی شکل است، ولی روی زمین که نیروی جاذبه وجود دارد، سطحی که در آن آب بتواند پایدار باشد، صاف و افقی است. بلورهای نمک شکل مکعبی دارند. زیرا این صورت باثباتی برای کنار هم نگه داشتن یون های و کلور است. در خورشید سادهترین اتم ها یعنی اتم های هیدروژن با هم جوش میخورند و اتم های هلیوم را می سازن. زیرا در شرایط حاکم بر آنجا هیئت هلیوم بودن صورت پایدارتری است بعد از آغاز پیدایش جهان. که در حال حاضر بنابر نظریه مرد قبول اکثریت مهبانگ عمل آن بوده است، اتم در دورترین نقاط سراسر عالم شکل گرفتند. اتم های دیگر که خیلی پیچیده‌تر هستند، یعنی عناصر جهان، در اصل از اینجا پیدا شده اند. گاهی وقتی اتم ها به هم میرسند، نسبت به هم دیگر واکنش شیمیایی نشان میدهند و با هم ملکول هایی را میسازند که ممکن است، تا حدی با باثبات باشند این ملکول ها ممکن است خیلی درشت باشند بلوری مانند الماس را میتوان یک مولکول به حساب آورد مولکولی که از نظر ثبات زبان زد اما بسیار ساده است چون ساختار اتمی درون آن بینهایت تکراری است با این حال ملکول های درشت دیگری هستند که بسیار پیچیده اند و پیچیدگیشان در سطوح مختلف آشکار میشود هموگلوبین خون ما نمونه ای از یک مولکول پروتئین است. این مولکول از رشته‌ی از مولکول‌های ریزتر، یعنی ها که هر کدام از آن آمینواسیدها شامل چندین اتم است که به شکل خاصی در کنار هم قرار گرفتند. در مولکول هموگلوبین ۶۷۸ آمینواسید وجود دارد. این آمینواسیدها در چهار رشته به هم تابیده قرار دارند و با هم یک ساختار سبودی گوی مانند فوق‌الاده پیچیده میسازند. مدلی از یک مولکول هموگلوبین بیشتر شبیه یک بوته خار در هم فشرده است، ولی برخلاف یک خاربون واقعی، طرح پیچیدگی خارهای آن اتفاقی نیست، بلکه ساختار معین و ثابتی دارد. طرحی که بدون هیچ شاخک یا پیچ و تاب نابجا بیش از 600 میلیون میلیون میلیون در بدن انسان معمولی تکرار شده است شکل منظم و خاربونی یک مولکول پروتئین مثلا هموگلوبین با است به این ترتیب که دو رشته شامل توالی یکسانی از آمینواسیدها دقیقا به صورت طرح سه بعدی یکسانی چمبر زده اند همین حالا در بدن شما هموگلوبین ها به آن شکلی که خود ترجیح می ام دارم با سرعتی حدود 400 میلیون میلیون عدد در ثانیه پیدا می شوند و تعداد دیگری با همین سرعت از میان می‌روند. هموگلوبین یک مولکول امروزی است که از آن استفاده کردیم تا نشان دهیم اتم‌ها تمایل دارند به صورت باثبات ظاهر شوند. نکته قابل ذکر اینکه قبل از پیدایش حیات بر روی کره زمین احتمالا توسط فرایندهای فیزیکی و شیمیایی عادی تکامل حاشیهای بعضی از مولکولها رخ داده است لزومی ندرد به دنبال یافتن نقشه هدف یا جهت خاصی در این کار باشیم هرگاه گروهی اتم در مرز انرژی طرح معینی به خود بگیرند این گرایش وجود دارد که به همان شکل باقی بمانند نخستین صورت انتخاب طبیعی فقط انتخاب صورتهای باثبات و رد شکلهای بیثبات بود چیز اسرارآمیزی در این امر وجود ندارد طبق تعریف آنچه رخ داده است باید رخ میداد البته نباید به این نتیجه رسید که میتوان وجود موجود پیچیدهای همچون انسان را فقط با همین اصول شرح داد اینطور نیست که تعداد مناسبی اتم را با یک انرژی بیرونی تکان بدهیم تا به طور اتفاقی به صورت مناسبی کنار هم قرار بگیرند و نتیجه کار بشود یک آدم شاید مولکولی را که از چند اتم ساخته شده بتوان به این صورت درست کرد اما آدم بیش از هزار میلیون میلیون میلیون اتم درست شده است اینکه آدم بسازی باید آن دستگاه همزن بیوشیمی خود را در مدت زمان بسیار طولانی. ما در زمانی که در مقابل آن طول عمر کیهان بیش از یک چشم به هم زدن نباشد به کار بیاندازیم. تازه آن وقت هم به جایی نمی رسیم. در اینجاست که نظریه داروین در کلیترین صورت خود به داد ما می رسد. نظریه داروین از زمانی وارد می شود که داستان روند کند تشکیل ملکول به پایان رسیده است توضیحی که من از آغاس پیدایش حیات ارائه میکنم لزومن فرضی است از قرار معلوم در آن زمان کسی آن دور و برها نبود تا ببیند چه رخ می میدهد چند نظریه دیگر هم در این مورد وجود دارد اما از بعضی جهات مثل همند. این توضیح ساده ای که من ارائه میکنم احتمالا زیاد دور از حقیقت نیست ما نمیدانیم قبل از حیات چه مواد خامی در روی زمین فراوان بود اما احتمالاً وجود آب و دیوکسید کربن متان و آمونیاک تقریبا پذیرفتنی است همه این ترکیبات ساده دست کم در سیارات دیگر منظومه شمسی ما وجود دارند ها سعی کردند شرایط شیمیایی دوران جوانی زمین را دوباره بسازند آنها مواد ساده را در محفظه قرار دادند و یک منبع انرژی مثل نور ماورای بنفش یا جرقه الکتریکی هم فراهم آوردند که شبیه سازی رعد و برخ اولیه بود. بعد از چند هفته چیز جالبی در آن محفظه پیدا شد. یک سوپ رقیق قهر شامل تعداد زیادی مولکول که اغلب پیچیدهتر از ملکول بودند که در ابتدای کار در آنجا گذاشته شده بودند. مخصوصاً آمینواسید ها، سنگ بنای پرتین ها دیده شدند. که یکی از دو طبقه مهم مولکولهای زیستیند. قبل از انجام این آزمایش ها تصور می‌شدام نسیت‌ها که به طور طبیعی یافت میشوند شاخص حیات باشند. مثلا اگر روی کره مریخ پیدا میشدند، احتمال وجود حیات روی آن سیار بسیار زیاد می‌بود. اما حالا وجود آنها فقط حاکی از وجود چند گاز ساده در جو و آتش‌فشان‌ها، نور آفتاب یا هوای رعد و برقی است. همین اواخر آزمایشگاه شبیه سازی شرط شیمیای زمین قبل از پیدایش حیات مواد عالی به نام پیورین و پیورومیدین را به دست داده است. اینها سنگ بنای ملکولهای جنی یعنی DNA ای هستند. فرایند شبیه این آزمایی شد. باید منجر به پیدا شدن سوپ اولیه‌ای شده باشد که از نظر زیستشناسان شناس حدود سه یا چهار هزار میلیون سال پیش دریاها را تشکیل می‌دادند. این مواد عالی در جاهای مختلف متراکم شدند. شاید در کف لبه ساحل ها یا در قطره معلق کوچک و تحت تأثیر انرژی های دیگر مانند نور ماورای بنفش خورشید به هم پیوستند و ملکول بزرگتری ساختند. امروز ملکول عالی درشت آن دوام نمی که دیده شوند. خیلی زود توسط باکتری یا موجودات زنده دیگر شکسته و جذب می شوند. ولی باکتریها و بقیه ما متعلق به زمانهای جدیدتری هستیم. و در آن روزها ملکول های آلیه درش می به راحتی در آن سوپ در حال قلیز شدن به هر سو رانده شوند. در جایی به طور تصادفی یک مولکول استثنایی خاص تشکیل شد ما آن را همتا ساز یا ریپلیکیتور خواهیم نامید این ملکول لزوماً بزرگترین یا پیچیده ترین ملکول در آن دوربر نبود ولی این خاصیت فوق‌العاده را داشت که میدوانه چیزهایی چیزهای مانند خودش تولید کند. ممکن است رخ دادن چنین حادثه‌ای بعید به نظر برسد. ولی به هر حال رخ داده است. احتمال هم بسیار کم بود. ما چیزهای که رخ دادنشان در طول عمر یک آدم تا این اندازه نامحتمل باشد غیر ممکن به شمار میآوریم به همین دلیل شما در شرط بندی‌های فوتبال برنده نمی شوید. اما ما انسان ها. در تخمین چیزهای ممکن و چیزهای غیر ممکن عادت نداریم که با صدها میلیون سال سر و کار داشته باشیم. اگر شما طی صد میلیون سال هر هفته کپون بندی مسابقه را پر کنید به احتمال زیاد چند بار برنده می شوید. در واقع داشتن تصوری از یک مولکول که نسخه ای از خودش را می سازد آن قدرها هم که در ابتدا به نظر می رسد مشکل نیست. فقط کافی است. یک بار پیدا شود آن را به صورتی یک مولکول درشت در نظر آورید که شامل زنجیره های ای از انواع مختلف ملکل های واحد ساختاری باشد این ملکل های واحد ساختاری به وفور در سوپی که دور و برای آن همتا ساز بودی یافت می شود. حالا در نظر بگیرید که هر مولکول واحد ساختاری کششی نسبت به نوع خود دارد هم وقت هرگاه که یک ملکول واحد ساختاری از بیرون آن وارد آن سوپ و نزدیک بخشی از آن همتاساز ساز شود که نسبت به آن کششی دارد، میل می کند که همانجا بماند ملکول های واحد ساختاری که به این ترتیب به هم می خود به خود ترتیبی پیدا می کنند که شبیه ترتیب خود آن همتاساز ساز است دیگر در نظر آوردن آنها به که مجموعه به هم چسبیده مشکل نیست آنها باید می چسبن. تا رشته ای با دوام بسازند درست به همان صورتی که آن هم تاساز اولیه تشکیل شد این فرایند ممکن است به صورت تدریجی با تلمبار شدن هر لایه روی لایه دیگر ادامه پیدا کند این همان ترتیبی است که بلورها ساخته می شود از طرف دیگر ممکن است این درشده از هم جدا شوند که در آن صورت دو هم تاساز داریم که هر یک می تواند بساختن ساختن نسخه هایی از خود ادامه دهد. یک امکان پیچیده این است که یک ملکول واحد ساختاری نه نسبت به نوع خود بلکه به طور دو جانبه به یک نوع خاص دیگر کشش داشته باشد. آنگاه آن همتاساز مانند یک شابلون عمل می کند اما نه برای نسخه برداری از خودش بلکه برای ساختن یک نوع نگاتیو آن هم به خود دوباره از آن شکل مثبت اولیه رونوشت را می سازد. برای کار ما مهم نیست که فرایند همتاسازی اولیه به صورت مثبت منفی یا مثبت مثبت باشد گرچه بعد نیست یادوبر شدیم امروزی آن همتاساز نخستین یعنی ملکول های دی ای از همتاسازی مثبت منفی استفاده می کنند. مهم این بود که نوع جدیدی از صبات ناگهان وارد جهان شد این احتمال هست که در ابتدا هیچ نوع ملکول پیچیده ای در آن سوپ فراوان نبود چون هر کدام باید به طور اتفاقی از کنار هم قرار گرفتن ملکول های واحد ساختاری با ترتیب خاصی که با بود به وجود می آمدند. به محض اینکه آن آن همتاساز پیدا شد و احتمالا به سرعت نسخه های از خودش را در سر تا سر آن دریا پراکنده کرد تا آنجا که مکول های عناصر بنیادی که کوچکتر بودن کمیاب شدم تشکیل های درشت دیگر به ندرت صورت میگیره بنابراین مثل اینکه داریم به جمعیت بزرگی از نسخه همانند می رسیم اما حالا باید یک خاصیت مهم هر فرایند نسخه برداری را ذکر کنم این کار بینص نیست اشتباهی در آن رخ می دهد من امیدوارم در این کتاب اشتباه چاپی وجود نداشته باشد ولی اگر به دقت آن بگردید شاید یک یا دو تا پیدا شود که البته در معنی جمله یک کتاب چندان اشکالی به وجود نمی آورد. زیرا اشتباهات نسل اول هستند ولی زمان قبل از اختراع چاپ را در نظر بگیرید زمانی که کتاب های مانند انجیل با دست نسخه برداری می شدند همه کاتب ها هر قدر هم که دقت می کردند، در کارشان اشتباهی وجود داشت اگر همه از روی یک نسخه اصلی رو نویسی معنا زیاد تغییر نمیکرد، اما وقتی رو ها از روی نسخههای های به تهیه شد که آنها هم از روی نسخه های متفاوت نوشته شده بودند اشتباه ها کم کم بیشتر و بزرگتر می شد از نظر ما نسخه‌ای که در آن اشتباه باشد چیز بدی است و در مورد سندهایی که آدم ها می سازن خیلی بعید است هایی را که در آنها اشتباه وجود دارد پیشرفت محسوب کنیم. به نظر روحانیان که کتاب تورات را به یونانی ترجمه کردند، در یونانی با قرار دادن باکره به جای واژه عبری که معادل زن جوان بود، کار بزرگی را بنا گذاشتند و به این پیشگویی رسیدند که بنگر که باکره باردار شده و پسری به دنیا خواهد آورد. به چنان که خواهیم دید، نسخه برداری بی‌دقت در همتاسازهای زیستی باعث پیشرفت به معنی واقعی آن می شوند و برای تکامل تدریجی حیات وجود بعضی اشتباهات ضروری است. ما نمی‌دانیم هم همتاساز اولیه با چه دقتی نسخه‌هایشان را می‌ساختند. بازبندگان امروزی آنها یعنی های DNA. در مقایسه با فرایند نسخه برداری بسیار معتبری که انسانها انجام می دهند به طرز شگفت قابل اعتمادند اما آنها هم گاهی اشتباه می کردند و در نهایت این اشتباهاتند که تکامل را ممکن می سازد. آن همتاسازهای های اولیه خیلی بیشتر اشتباه داشتند در هر صورت یقین داریم که اشتباه ها صورت می گرفت و انباشته می شد. وقتی نسخه برداری های پر صورت گرفت و نسخه منتشر شد آن سوپ اولیه پر شد از جمعیتی که نه از نسخه یکسان بلکه از چند رقم مختلف از ملکولوهای همتاساز که همه از بازماندگان آن نیای مشترک بودند. آیا تعداد بعضی رقم ها بیشتر از رقم های دیگر بود؟ تقریبا با اطمینان میتوان گفت بله بعضی ارقام ذاتا پایداری بیشتری داشتند. احتمال دوباره از هم پاشیدن بعضی مرکول ها پس از تشکیلشان نسبت به بقیه کمتر بود این رقم ها شمارشان در آن سوپ نسبتا بیشتر شد نه فقط به این دلیل منطقی که ماندگاری بیشتر داشتند بلکه به این خاطر که زمان بیشتری برای ساختن نسخه هایی از خود در اختیار داشتند بنابراین همتا سازهای ماندگارتر رو به افزایش نهادند و در شرایطی که چیزهای دیگر یکسان می بود یک روند تکاملی در جهت ماندگاری بیشتر در جمعیت مولکولها برقرار می شد ولی احتمالاً چیزهای دیگر یکسان نبود و یک ویژگی دیگر نوع همتاساز که شاید انتشارش در میان جمعیت اهمیت بیشتری داشت سرعت همتاسازی یا زایایی بود اگر ملکول همتاساز ای نسخه مانند خود را به طور متوسط هفته یک بار میسا، و ملکول همتاساز B ساعتی یک بار نسخه ای از خود میسا به راحتی می‌بینیم که در زمان خیلی کوتاهی های A از میدان به در می‌شدند حتی اگر طول عمرشان خیلی بیشتر از های B بود بنابراین احتمالا یک روند تکاملی در جهت زایایی بیشتر در آن سوپ وجود داشته است ویژکی سوم مولکول‌های همتاساز که به مثبت مورد گزینش واقع می‌شدند دقت در همتاسازی بود اگر مولکولهای نوع ایکس و نو اگرگ دوام یکسانی داشتند و با سرعت یکسانی همتاسازی میکردند اما نوع ایکس در هر ده همتاسازی یک اشتباه و نو اگریگ در هر صد همتاسازی یک اشتباه میداشت یقیناً تعداد نوع اگرگ بیشتر میشد گروه ایکس نه فقط زادگان دارای اشتباه خود را از دست میداد بلکه به این ترتیب زادگان آن زادگان را چه بالقوه چه بلفل بل نیز از دست میداد اگر شما از قبل درباره تکامل چیزی بدانید ممکن است در آخرین ای که بیان شد کمی تناقض ببینید آیا میشود بین این نظر که اشتباه در نسخه برداری پیشنیاز ضروری برای رخ دادن تکامل است و این عبارت که انتخاب طبیعی امانت در نسخه برداری را ترجیح می دهد. سازش برقرار کنیم پاسخ این است که چند تکامل به صورتی نه خیلی آشکار چیز خوبی به نظر می رسد به خصوص از این نظر که ما محصول آن هستیم ولی در واقع در هیچ چیز میل به تکامل وجود ندارد تکامل چیزی است که علا تلاش امتصاص ها و امروز برای پیشگیری از وقوع آن خواهی نخواهی رخ می دهد. ژاک مونو در سخنانیش درباره هربرت اسپنسر در قالب گفته ای خیلی خوب به این نقطه اشاره کرده است. یک جنبه عجیب دیگر نظریه تکاملی که همه فکر می کنند آن را می فهمند. برگردیم به سوپ اولیه که احتمالا پر از انواع ملکول های باسوبات شده بود. باسوبات از این زرد که طول عمر ملکول ها زیاد بود. خیلی سریع همتاسازی می یا هم تا سازیشان با دقت زیاد صورت می گرفت. روند تکاملی در جهت این سنو و پیش می رفت به این صورت که اگر در دو زمان مختلف از آن سوپ نمونه برمی داشتید در نمونه دوم نسبت بیشتری از گونه‌های دارای ماندگاری زایایی و امانت بیشتر در نسخه برداری یافت می‌شود. در واقع این همان منظور نظر یک زیستشناس از تکامل است وقتی از موجودات زنده صحبت می کند و سازوکار آن هم همین است انتخاب طبیعی اما آیا ما باید آن همتاساز نخستین را چیز زنده بنامیم چه اهمیتی دارد ممکن است من به شما بگویم بزرگترین انسانی که تاکنون زیسته داروین است و شما بگوید نه نیوتون است البته امیدوارم این بحث زیاد به درازه نکشد. مهم این است که بحث به هر صورت به انجام برسد. در اصل ماجرا تأثیری ندارد. در واقعیت زندگی و دستاوردهای های نیوتون و دارمی تغییری پیدا نمی چه ما برچسب بزرگ را بر آنها بزنیم چه نزنیم. اعتمالا داستانان ملکود همتاساس هم همینطور است چه فرقی می کند که آنها را زنده بنامیم یا نه. دلیلش این است که بسیاری از ما متوجه نیستیم که واجه ها فقط ابزارهایی هستند برای استفاده ما و صرف وجود آنها در فرهنگ لغت دلیل نمی شود حتما به چیز خاصی در جهان واقع برگردند چه ما آن هم تا سازهای نخستین را زنده بنامی یا نه آنها اجداد حیات و پدران سازنده ما بودند موضوع دیگر مربوط به این بحث چیزی که خود داروین روی آن تأکید داشت گرچه او از حیوانات گیاهان صحبت میکرد نه ها رقابت است آن سوپ اولیه نمیتوانست از آن تعداد بیشمار های همتاساز حمایت کند یک دلیل محدود بودن وسعت کره زمین بود عوامل محدود کننده دیگر هم بیاهمیت نبودند در تصویری که در آن همتاساز را مثل یک الگو یا شابلون در نظر گرفتیم فرض می کنیم آن سوپ قلیز پر از ملکول های کوچک واحد ساختاری لازم برای نسخه برداری ها بود و الگوی ما در آن قوته بود. اما وقتی تعداد همتاسازها زیاد شد از آن ملکول های به میزان مرد نیاز وجود نداشت و آنها به صورت یک منبع پر ارزش و کمیاب در آمدند که نوها و زنجیرهای مختلف همتاساس ها بر سرشان با هم رقابت میکردند ما عواملی را که باعث افزایش تعداد انواع برتر همتاساس میشد ملاحظه کردیم حالا میبینیم بینیم گونه هایی که کمتر ترجیح داده می عملا تعدادشان باید در این رقابت کمتر میشد و در نهایت بسیاری از های آنها باید از بین رفته باشد انواع مختلف همداساز درگیر تنازع بقا بودند آنها نمیدانستند که در تلاشند و نگران نبودند این کشمکش بدون که احساس بدی ایجاد کند پیش میرفت در واقع بدون هیچ احساسی بود اما همچنان ادامه داشت به این مفهوم که هر اشتباه در نسخه برداری که منجر به شناخت یک سطح جدید و بالاتر ثبات میشد یا روش جدیدی بود برای پایین آوردن میزان پایداری رقیب خود به خود حفظ و تکثیر میشد. فرایند پیشرفت انباشتی بود. روش افزایش پایداری خود و کاهش پایداری رقیب دقیقتر و کارآمدتر میشد. شاید حتی بعضی از آنها کشف کرده بودند چگون های رقیب را به طور شیمیایی از هم بفاشند. و از ملکول های واحد ساختاری که از این طریق آزاد می برای ساختن نسخایی از خودشان استفاده کنند. این نخستین موجودات قالب همزمان با از بردن رقیب به غذا دست می آفدن. دیگر احتمالا کشف کردن به صورت شیمیایی یا با ساختن یک دیواری پروتینی به دور بدن از خود محافظت کنند. احتمالا به این ترتیب نخستین سلولهای زنده پیدا شدند هم سازها نه فقط به وجود آمدند بلکه برای خود جایگاهی ساختند وسیلهای که وجودشان در آن به زندگی ادامه دهد آن هم همتاسازهایی بقا یافتند که ماشین بقا برای خودشان ساختند تا در آن زندگی کنند احتمالاً اولین ماشین بقا چیزی بیش از یک پوشش محافظ نبود ولی به تدریج که رقیب‌های جدید با ماشین بقای بهتر و کارآمدتر پیدا شدند امکان ادامه زندگی سخت‌تر شد. ماشین های بقا بزرگتر و مفصلتر شدند و این فرایند تدریجی و انباشتی بود. آیا این پیشرفت تدریجی در روش ها و شیبه هایی که آن همده برای تضمین ادامه وجودشان در جهان به کار می پایانی داشت؟ برای پیشرفت زمان فراوانی در دست بود چه ماشینهای عجیب برای حفظ خود در آن هزارها به راه افتاد چهار هزار میلیون سال بعد سرنوشت آن هم تا سازهای قدیمی به کجا رسید آنها از بین نرفتند زیرا در هنر بقا استاد شده بودند ولی دنبال این نباشید که آنها را قوته ورد در دریا پیدا کنید. کنیددتهست که آن آزادی بی محدودیت خود را از دست داده‌اند حالا به صورت مجموعه‌های بزرگی درون ربات‌های سنگین گولاسا در جوش و خروشم و جدا شده از جهان بیرون به زحمت از راه‌های غیر مستقیم با آن ارتباط دارند و با کنترل از راه دور از آن به نفع خود استفاده می‌کنند آنها در من و شما هستند ما را ساختند جسم و ذهن ما را و پشتکار آنها علت نهایی وجود ماست. آنها از راهی دور آمدن. این همتاساس ها حالا به اسم جن پیش می‌روند و ما ماشین بقای آنها هستیم. جن خودخواه نوشته ریچارد داکینز پینویس های فصل دو همتاساس ها. در توضیح این بارده. این توضیح ساده شده ای که من از منشأ حیات ارائه می کنم احتمالا دور از حقیقت نیست. نظری های بسیاری درباره منشأ حیات وجود دارد ولی من به جای اینکه به همه آنها بپردازم فقط یکی را انتخاب کردم و در جن خود فکر اصلی آن را نشان می دهم ولی نمی خواهم این تصور ایجاد شود که این تنها انتخاب یا بهترین آنهاست. در واقع در ساعت ساز نابینا عمدن یک نظریه دیگر را انتخاب کردم نظریه خاک آج قیریت را در هیچ کدام از این کتابها خودم را به یک نظریه خاص وابسته نکردم. شاید اگر کتاب دیگری می نوشتم فرصتی پیش می‌آمد که یک دیدگاه دیگر را شرطام. دیدگاه ریاضی شیمیدان آلمانی، مانفرد ایگن و همکاران را چیزی که همیشه سعی می‌کنم به آن توجه شود. ویژگی های اسامی هر نظریه خوب درباره منشأ حیات است. در هر سیاره که باشد که مهمترین آنها مفهوم موجودات ژنی خود تکثیر کنست. توضیح درباره باکره باردار شده. بعضی از افراد رنجید خاطر که با ما مکاتبه کردم، در مورد اشتباه در ترجمه زن جوان به صورت باکره در پیشگویی تورات پرسیده و از من جواب خواسته بودم توهین به باورهای دینی کار خطرناکی است و من بنابراین بهتر از عذر خواهی کنم ولی از این نظر جای است که اغلب دانشمندان برای نوشتن یک پینوشت علمی واقعی خود را به اندازی کافی با گرد و خاک کتابخانه این نکته است که پژوهشگران انجیل به خوبی از آن آگاهند و بر سر آن بحث ندارند. واژه ابری الماه تردید به معنی زن جوان است بدون اینکه مفهوم زمینی دوشیزگی در آن باشد. اگر دوشیزه مورد نظر بود به جای آن از واژه و بتول استفاده می‌شد. توی پرانتز واژه داروی ابهام میدن در زبان انگلیسی به سادگی نشان میدهد که چقدر راحت میشود از این معنا با آن دیگری پرید. جهش وقتی رخ داد که در ترجمه یونانی ما قبل مسیحیت معروف به ترجمه هفتاد نفری به جای واجه الماه از واژه پارتنوس استفاده کردند که به طور غیرعادی معنی دوشیزه میدهد. متا یا متیو نه آن هواریو هم اصر مسیح. بلکه یک سیر بعد از او وقتی از قول اشعیا میگوید اکنون همه کار تمام شده است آنچه سخن ارباب ما از زبان رسول است که می گوید، بنگر بینگر باکره میشود بچه دار می و پسری میآورد و او را امانویل مینامند باید تحقق پذیرد تو پرانتست ترجمه نسخه مجازی به نظر می رسد چیزی را گفته که برداشت خود او از ترجمه هفتاد نفری است پژوهشگران دین مسیح داستان باکر زاده شدن مسیح را از الهاقات بعدی آن می‌دانند. که احتمالا کار پیروان یونانی زبان است برای محقق نمودن آنچه به اشتباه ترجمه شده بوده است. در روایت جدید مثل انجیل انگلیسی در اشعیا به درستی زن جوان آمده است و در متیو به همان ترتیب به درستی باکره را کرده اند. زیرا از روی یونانی ترجمه کردهاند. حالا در توضیح عبارتی که در کتاب آمده که عبارت اینه حالا به صورت مجموعه بزرگی درون رباتهای های سنگین غولاسا. توضیح این شاه بیت یک زیاد روی نادر. بارها و بارها شادمانه به عنوان گواه جبر جنی افراتی من نقل شده است. بخشی از مشکل مربوط به برداشت رایج، ولی نادرستی است که مردم از کلمه ربات دارند ما در دوران طلایی الکترونیک هستیم و دیگر ربات آن موجودات آهنی و بیخاصیتی نیستند که نتوانند چیزی را یاد بگیرند آنها هوش و خلاقیت دارند از غذا حتی در 1920 که کارل چاپک واژه ربات را اختراع کرد منظورش موجودات ماشینی بود که دارای احساسات بشری از قبیل عشق میشد کسانی که گمان میکنند ربات ها بنا تعریف جبریتر از انسانها ها طراحی شده اند درست متوجه نیستند. مگر اینکه اهل آیین خاص باشند که در آن مدام این تصور حاکم است که انسان ها دارای موهبت اراده آزادند که ماشین های واقعی از آن محرومند. اگر مثل اکثر منتقدان قطعه ربات های غولاسای من شما پیرو آیین خاصی نیستید پس برای سوال زیر چه پاسخی دارید؟ با سوال این است. اگر یک ربات، البته از نوع بسیار پیچیده آن نیستید واقعا چه هستید؟ من این موضوع را در رخنمون گسترشی در صفحه پانزده تا هفده مورد بحث قرار دادم. این اشتباه با یک جهش گفتاری دیگر هم همراه شده. همانطور که بنابر علم کلام لازم است مسیح از یک دوشیزه زاده شده باشد. بنزدل می‌رسد. بر اساس علم جنشناسی لازم است هر معتقد به جبر ژنی باور داشته باشد که جنها تمام جنبه‌های رفتار ما را کنترل می‌کنند. من درباره هم ژنی جنی نوشتم. آنها ما را ساختند، بدن و ذهن ما را. این را بسیار غلط نقل کرده اند. مثلا روز کامین و لونتین در نه های ما و قبل از آن در مقاله تحقیقی توسط لونتین به این صورت که آنها ذهن و بدن ما را کنترل میکنند تاکید از من است در متن اون فصل به نظرم معلوم است که منظور من از ساختند چیست و خیلی با کنترل کردن فرق دارد همه به راحتی متوجهند که در واقع جنها چیزی را که ساختن کنترل نمی کنند با آن مفهومی که به عنوان جبریت مورد انتقاد واقع شده است. هر بار که سخت جنین صورت می گیرد ما بدون تلاش باشد یا با تلاش نسبتا کمی از دستور آن سرپیجی کرده ایم.